بسم الله الرحمن الرحیم کلاس فقه مقارن جلسه ششم استاد معظم زیایی 16 اواین ماه 1401 قله شبیه سازی طبق نظر اهل سنت بحث شد البته ناقص بود بحث یه خلاصه عرض کنم چی بود ما اومدیم گفتیم که شبیه سازی یا استنسا یا کلونینگ یه پدیده نوظهوریه که هم جنبه فقه معاصر داره هم جنبه فقه مقارن داره یعنی مباحثی که در این حوزه مطرح میشه از دو زاویه قابل در واقع بحثه. اومدیم نسبت به اهل سنت ابتدای تقسیم بندی شد و اون اینکه شبیه سازی به سه قسم شبیه سازی نباتی و گیاهی، شبیه سازی حیوانی و شبیه سازی انسانی نسبت به حیوانی و گیاهی اونچه که به نظر رسید مشهور اهل سنت این رو پذیرفتند و قبول کردند و اشکالاتی هم که درش مطرح بود قابل جواب بود و جوابهایی رو نسبت بهش مطرح کردند اما مورد بخش پایانیش و مهمش و اون این که آیا ما از سلام علیکم شبیه سازی انسانی که در واقع همه اون دو قسم قبل پیش این مقوله است که شبیه سازی انسانی آیا در فقه اهل سنت پذیرفته شده هست یا پذیرفته شده نیستش اینو می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم پس بحث ما شبیه سازی سفستی داشتیم نباتی و گیاهی هیوان. حیوانی حالا بکنیم نسبت انسانی بحث بکنیم که آیا شبیه انسانی در فقه آمه چه جایگاهی داره آیا پذیرفته شده است یا نه با اشکال خب اجمالا مولانا رو بدونید مشهور اهل سنت مشهور اهل سنت قائل به عدم جواز هستند دوستان عدم جواز شبیه سازی انسانی من ابتدا یه بحثی رو بگم خدمتتون به عنوان مقدمه بحث که اساس شبیه ساز انسانی چه هایی میتونه داشته باشه گونه هاش چیه یه که خیلی رایجه و مثلا اصف مثلا کسانی که مبتلا به حالا مثلا ناباروری هستن ناباروری هستن اینا میان مثلا از مرد یا از زن حالا چه از زن تخمک رو چه از مرد مثلا اون اسپرما رو میگیرن حالا گایی اوقات در محیط آزمایشگاهی گایی اوقات نه با انجام یک فرایند در واقع ژنتیکی همون رو دوباره در مثلا رحم زن قرار میدن بالاخره یه عملیات هایی خارج از عرف انجام میشه درش روال عادی تولید نسل یا تولید مثل اینه که تماس حالا به قول معروف جسمی و جنسی صورت بگیره یعنی جنس نر جنس ماده تبقیه اون فراینده خاص انتقال مثلا استرم بشه در واقع درون رحم زن قرار بگیره و خداوند متعال تبدیلش بکنه به جنین و فرزنده این مثلا بند این چیز حالا من نبقیم حالا کلامی و فقهی و این اینه درست شد حالا شبیه سازی انسانی خارج از این عرف من یه اسفاسش میذارم یعنی تولید نسلی خارج از این عرف حتی گایی اوقات میدونید در سلام ننکم نمونه هایی هستش که میبینی که مثلا تو این عملیات شبیه سازی جنس نری صورت نیستش وجود نداره مثلا جنس نری نیست یعنی اون بارور کردن تخمک امکان داره توسط مثلا یک تکه از بدن صورت بگیره حتی بدن یه جنس ماده میان خودش رو در واقع. حالا اصطلاحات پزشکی شو دیگه اینا رو باید اونها نظر بدن. چی جوری مثلا ما به قول خود لوخلیه و تبعش میکنن این رو با او در واقع پیوند میزنن تبدیل به یک جنین میشه. درست شد؟ و گونههای مختلفی که تو این هست هر روزم در واقع علم پزشکی به یک فناوری در این زمینه میرسه. درست؟ حالا می‌خوام این درسته یا نه؟ علل سنت اومدن گفتن نه آقا قایل ما قائل به عدم جواز هستیم میگیم دلایلتون چیه برای عدم جواز اینا تو مجموعه دلایلش که عرض میکنم من از مقالات این هفته قبل عرض کردم از, از کتابایی که تو این زمینه نوشتن برداشت میشه اومد اومدن دلیل عدم جواز رو دلایل فقهی حقوقی کلامی عرفی اخلاقی همه رو قاطی کردن به عنوان مجموعه ادله عدم جواز شبیه‌سازی انسانی مطرح کردن یکی یکی میگیم بعداً میریم سراغ پاسخ‌هاش یک میگن آقا نسل تولید نسل باید در واقع به روش تماس جنسی صورت بگیره ببخشیدم یه ذره اگه این الفاظ به کار میگن باید اون ج... فرایند جنسی خاص صورت بگیره و خداوند متعال این فرایند را برای تولید نسل معرفی کرده با توجه به مضمون نه نسل مضمون و ظاهر بعضی از آیات و روایات ما که باید تولید نسل با این روش انجام بشه درست شد؟ این یه فقط فعلا سیاهش رو مخونیم بعد بعد برمیگریم دو از اول دو میگن که اگر کسی در واقع این بریم که یادمون ندره در واقع لزومه یادت باشه پاکش کنم بعد این تماس جنسی یا ما باید دوزوم تماس جنسی داشته باشیم و چون در شد تماس جنسی اصلا صورت نمیگیره پس جایز نیست دو یه ای در این دو دو یه مقدمه بگم اول یه مقدمه بگم. فکرانی دوستان مقاصد شهرگر یه در جونه حفظ دین، حفظ مال، حفظ جان، حفظ آبرو یه دونه دیگه بود تو حفظ نسل یا نسب یعنی در واقع باید نسل امتداد پیدا بکنه یعنی شریعت باید مقدماتی رو فراهم بکنه تا تولید نسل صورت بگیره منظور از نسلم دوستان حلال دیگه درسته؟ درسته درست. میگن ها میگن وقتی که ما بریم سراغ شبیهسازی انسانی اختلاط نصب صورت میگیره یه جواب داره رو میگم اختلال نصب وجود داره و چون اختلال نصب مخل به چیه شرعی است پس این جایز نیست در واقع یه قیاس درست میگن شبیه سازی اختلال نصب است اختلال نسب مخالف مقاصد شرگیه است اون موقع مخالف مقاصد شرگیه همی شید دوستان هرامون که ما باید بیدیم به اون سب پس دومی دو دلیلی که اینا میارن میبرنش تو بحث مقاصد شرگیه سه یا اساس از موارد در واقع ببینید در فقهی او اشباش ببینید خارج میشن سه دلیلشون اینه میاد ما وقتی که یه بچه به دنیا میاد یا هم یه نطفه شکل میگیره. تا نطفه شکل میگیره مثلا مادر می سه ماه چه ماه هم. تا یه اتفاق بیفته یه روابطی شکل میگیره. روابط پدری، مادری، خواهری، برادری، عمو، دایی خاله امه همه اینا شکل یعنی یه جنین با تماس جنسی اگر شیل بگیره همون زمان که زن در واقع باردار هستش معلومه روابط خود, خود خود درست میشه قهری او مییه من باغاشم او میگه من قامارشم او بهکی بچه میمن چی خواهرشم و میگه من برادرشم و میگه من اموشم میگه من داییشم میگه من خالهشم میگه من مهشم بگیم و حالا اینکه اگه بدید سراغ شبیه سازی انسانی چی پیدا میشه؟ اینجور رو ابهام در روابط بگید خیشاوندی این دلیل داره حالا رد اینا همه پاسخ دارم. ما فعلا به این بدونی بگیم وقتی لطفه یا جنین شکل میگیره یا متولد بشه اصلا اصلا ما بگیم معمولا ممنوعات همون جنینی همه دیگه مادر منصوب دو خودش رو بده خودش یه بچه‌م بابام یه بچه‌م یکی بابابزرگی رو یه نامه ما از گردن نکنی یکی میوسته داد شما نتیجه ما از گردن نکنی امور دیگه برادر برادرزاده من چطوره اون یه خواهر زاده من چطوره آخه همه شو ببین ارتباخ دو مثلث شه ولی این چیزی شو شبیخ سازی ابهام وجود داره در رابطه شیشاوندی در رابطه شخص دیگه باشه مثلا دیگه یه مثال گفتم شبیه سازی یه چیزایی انواع گوناهای مختلفی داره دیگه با گوناهای مختلفش دیگه چی؟ آقا یه ابهام دیگه به وجود میاد وقتی که این مثلا بچه متولد بشه درست یا اصلا نهتون جنین باشه خب حیلر و چیه مثلا بگید نفقه بگه <تصفيق> یعنی بعضی از شبیه سازی ها رو ما داریم که اصلا پدر نیست چی کی هست که باقید نفقه به احدش باشه ما دوره دربه در نفقه پیدا میشه بحث بعدی ارس آه این اگر یه بچه یک بوده خودمون شناس باشه که با لزوم تماس جنسی در واقع این شکل گرفته شده باشه شما جریان ارثش کاملا معلوم به چه شکل بچه به دنیا میاد پسر یا دختره این معلوم میشه از بابا چقدر ارث ببره اما چقدر عرص ببره نه یا این بچه مثلا صاحب مال باشه این بچه بمیره بابای چقدر؟ ارس ببره مامانه چقدر ارث ببره این در واقع ابهام میشه پس مینیویسی پنج ابهام در چی ارس شیش میبنه ش زره اخلاقیشوی باره بحثو میگه آقا اگر شما بری دنبال شدیحسازی انسانی موجب واقع بگم آسیب به نهاد خانواده است دست آقا خیلی آ ازدماش با همین به حتر چی؟ بچه دوش حسن. حسن. دوش بچه میخواد دیگه مثلا اصلا پول داره داره میمیره احتمال رو ببیره حسرت این بار که شده یه بچه دوتا بچه فهنیش تا بچه نده یا مثلا طرف جن خوبه بگونید که یه رسمی در دوران جاهلیت بوده تو دوره جاهلیت بسان یه نوع ازدواج داشتیم به این سرک میده مثلا که ازدواج میکنم دو نفر دو تا بچه مثلا مرد اگر میدی که دوره جاهلیت بوده مخای این اون کتابی که بهتون تون معرفی محرفی کردم توانم یه مخوادش هست مثلا مرد مید دم یه دیگه یه هست خیلی تنومنده خیلی تنومنده بعد این زنه که از عدهای ابدیل... چی ببخشید اه... هیز که میشد پاک میشد درست خودش زنش رو در اختیار اون قرار میداد درست شد که او باهاش آمیزش کنه تا از نسل او صاحب چی بشه فرزند بشه به چه بچیدی؟ باقی مثلا مادم تنومردی بچه من مثلا به من میره یا به مامانش میره درست شد؟ من اینکه آدم تنومردی نیستم که پس این بچه من میشه مثلا به قول جنای خوب ایدامی کردن مثلا خیلی پولدار بودو درست شد؟ زنش رو بعد از مثلا خروجه از حیث در اختیار اون قرار میدم از او بشه درست شو؟ حالا اینجا هم همه رو میگه بگه ببینی اگر ما خانواده نهاد مقدس و نهاد مهمیه که باید یه مرد با یه ذک ازدواج بکنه سمره این ازدواج بچه بشه میگه اگر شما این راه رو باز کنید برای بچه دار شدن میتونیم مردانی رو پیدا بکنی بدون داشتن همه تماس جنسی و همسر رسمی صاحب فرضاً میشه از اون زنی هم میتونی پیدا کنی بدونه بگید شو. شوهر صاحب چی بشه؟ سلام علیکم. بچه بشه. و به خانواده آستی می‌زنه و باعث تقویت چی میشه؟ دوستان باعث تقویت بگید. تقویت چی؟ مجرد یه چیزی همی تحمیت میکنه هم گرایش. گرایش های طرف من دوست دارم بچه داشته باشم خایلی با این مرد باشم من و این مرد بچه دار نمیشیم بچه دوست دارم داشته باشم یا این زنه میگه من دوست دارم مادر باشم درست روی؟ نه داشته باشم مادری هم دوست دارم یعنی هم میخوام مادر باشم, مادر باشم. هم میخوام شاید. یه از همین فمینیسای امریکایی گفته ما جهان رو به سمتی می‌بریم ما جهان رو به سمتی که حتی یه مرد همش باشه <متصف> یعنی چی یعنی منظور رو نه یعنی باروری رو می‌برن از غیر در واقع مرد انجام میدن جنسیت جنسیاتم که میتونن بکنن؟ دارو میگه نیاز جنسی اونطوری یه برابر دارید بچه داری بچه‌داری اونم نیاز به شوهر ها در جهانه جهان بدونه یکی از کارگردان ما میفریم ساپ همین موضوع تبلف کارگردان اسمش اتیوپییا بود اتیوپی. چیزی که بعد این موضوع داستان از خانم افغانی خب همین که گفتی داره ای مادرش اینو شوهر بدونی که شوهر داشته میره یک بچه حامله میشه و مادر میشه. اخبار رو دیدی یا نه؟ اگه می‌فرمایید، تو همجنس جا... جنس با هم مرتدن از مادر اون یکیه و تداش. نه، هیچ کسی رو آره. آمده آمده آمده پس میشه همجنس جنس گرایی گاراژ هام جنس گرایی تقویت میشه یه چیز دیگه. این دیگه خیلی دیدم تو بعضی جا اینم مطرح کرده بودن آن شبیه سازیجه میکنن هم. میتونن حالا به حاله مرور تردین که ایجاد میکنن آدمایی مثل هم درست کنن یعنی نسل شبیه به هم دیدم تو بعضی جا اینطوری گفتن گفتن اگه ما نسل شبیه به هم درست کنیم مشکل چی میشه؟ جنایت و جور در جامعه زیاد میشه یعنی مجرمی شبیه به هم دیگه هستن شما نمیتونی اثبات کنی این آقا قاتله یا این آقا قاتله این آقا یا این آقا صارقه میگه اینجوری تکسره در واقع ها که پیدا بشه اون موقع مجرمی اگر بین اینها باشه شناسایی مجرم دیگه نیست در واقع شما فراهم کردی بستر رو برای جهاز مجرمان مجرم خیلی راحت در بینشون دیگه ظهور پیدا بکنه خیلی راحت میتونن جرم و جنایت انجام بدم یه چیز دیگه هم نوشته بوده همین تو این اصلا خدمت شما روابط نامشار روح در واقع دارن میگه یه زنی مثلا عاشب یه تیپ مرد خاصیه. درست شد؟ این خودش سفارشی برای خودش این رو در واقع تو رحم خودش پرورش میده چون عنوانی مادری که دیگه نداره که در واقع این رحم به عنوان یک وسیله برای مثل ازمایشگاه باگم میتونه برای بر این به دنیا میاد مثلا تو بمشته هاشون دارن. میتونه بعدا مثلا با خودش رابطه بگیره مثلا باهاش. یعنی در واقع این میاد روابط نامشروح رو گسترش میده یا مثلا تو خودش یه دونه در واقع مرد یه دونه زن پرورش میده بعد اینا متولد میشه مهمدی چی داشته باشن شد اصلا امکان هیچ ارتباطی هم از نیست دوتفهی به هم دیگه فقط, فقط اشتراکیشون در چه مخرج مشترکشون اون, اون رحم است. رحم هست مخرج مشترکشون آمنه میاد مجموع این دلالی که دیدی بعضیش جنبه حقوقی پیدا می بعضیش جنبه اخلاقی پیدا می بعضیش جنبه فقهی پیدا می بعضیش عرفی پیدا می اینا رو مجموعه عدلی برای عدم جواز یا بگم حرمت قرمت حرمت شبیه سازی حالا تو خودشون اهل سنت بعضی یا پاسخ این اشغالات رو دادن دلیل دلیل رو نه نه نه حالا بگم ارزو کنم این آیا دلیل دارن یا دلیل ندارن خب بریم سمان اولی میگه خواب ما این شبیه سازی انسانی آیا جایز است یا جایز, هست؟ جایز نیست؟ میگه جایز نیست میگیم چرا؟ میگه چون تولید نسل تولد فرزند باید با لزوم تماس جنسی باشه ما ازشون سوال میکنیم میگه آقا بسم الله رحمانه یا آیه برای ما بیارید یا یک روایتی برای ما بیارید که تو این آیه و روایت گفته باشه که تولید نسل الزاما باید از این روش باشه ببینید؟ یه بار دیارز میکنم میگه آقا جایز چون لزوم تماس انسانی جسمی حالا اون فراینده خاص نیستش ما سؤال میکنیم آقا بلغیر یه بعد شما داشته باشید دیگه برای این حرفتون دیگه؟ یه آیهی برای این داشته باشی یا روایتی داشته باشی که تو این روایت اومده اینو رو گفته بله شما مجموع آیاتی که میتونید بگید مثلا آیاتی که میاد مثلا نحوه تشکیل شدن نطفه رو میاد میگه یا فرایندهایی که اون چهل روز چهل روزی که نطفه باید تهی کنه چی بشه چی بشه اینو میاد به شما میگه اینکه باید از این راه باشد میگه ما هیچ نستی بر این نداریم که در واقع این که یه نطفه مردی با یه نطفه زنی که میخواد مزج بشه با هم حتماً باید با این راهکار کار باشه میگه همچی چیزی وجود نه همچی چیزی وجود نداره یک یکتر چون زبتم میشه که زر آدم باید اطول صحبت کنه اگه زبتم یعنی میشه شاید راحتتر میشه این بیان کرد که اگه مثلا یه مردی با یه زنی هیچ مشکلی هم ندارن با هم دیگه حالا تو بعضی از روایات ما هم چرا کی اون کسی گوش میده اونو اونور یکتون نا گوش گوش میدن آره حالا گنا دارن ببینید ما همه الان بارداری هایی داریم که طرف مثلا دخول اصلا صورت کل سند آی دی اف و آره آی دی اف چیز از این دو تا آره مم. اصلا الان نه اصلا مشکلی هم ندارن و مثلا, مثلا خیلی, خیلی پیش میاد این حالت مثلا تو جریان نامزدی عقد کردن مثلا کنار هم قرار گرفتن مثلا حالا خروج منی از مرگ صورت گرفته مثلا حتی به بدن اون خورده در واقع باردار شده یعنی اون فرآینده خاصی که اینا میگن اصلا سر شکل شاید نگرفته کدوم عهد ناسیه که بیاد به یک کدوم فقیه بگه که مثلا این در واقع حلال زاده نیست ما همچین چیزی نداریم که در روایات ما در آیات ما بیان بگن آه مثلا نطفه به شرطی حلال زاده است که حتما باید از کنار هم قرار گرفتن یا داد خودمونی دخولی صورت گرفته باشه بعد از دخول این اتفاق افتاده باشه همچی چیزی اصلا نداره لذا اون لزوم تماس جنسی اون لزومش دعوا بلا دلیله یه ادعایی که هیچ دلیلی ما براش نداری و دوستان اصلا من اون میگم ما در اینجا شک اگر بکنیم اینجا مجرای چیه؟ برائت ابا هست شما دلیلی نداریم بر اینکه شما پیدا نمیکنید دلیلی؟ که بیاد آیه یه حتما ببینید انحصار لزوم یعنی چی؟ یعنی چی؟ فقط و فقط آفرین یعنی لابدیت یعنی لابد باید از این راه چه میگه ما همچین دلیلی نداریم اون دلایلی که ما داریم میاد فرایند شکلگیری نسل رو میاد میگه و همچین چیزی ما نداریم پس این لزوم تماس جنسی که شما میگید یه ادعای بدون دلیله دو آه اختلاط نصب که دیگه بدتر از اولیه است اختلاط نسب استلاحش ما تو کجا شنیدیم اینو مثلا تو جریان اده تازه اونم حکمتشه دلیل قطعیش نیست میگم چرا زن بعد نگه داره چرا ماده بیا چون این تا دیروز همسن این ها بود احتمال داره مثلا معنی این مرد در این زن موجود باشه اگر این زن امروز از این طلاق بگیره فردو بره با یه مرد دیگه ازدواج بکنه احتمال داره اونم در جریان در کنار کنار این زن قرار گرفتن نطفه اون هم وارد رحم این زن بشه اینجا چی میشه اختلاط مثلا میاهش میگن دیگه نصب گم بشه و اختلاط نسب برمگد زمان جاهریت که مثلا تا مرد با یه زنی مثلا درد میآمیختند بعدا دعوا شروع میشد که آغای بچه مالکیه چیه؟ آ نجو اختلاط نصب پیشومده و آنهایی تو بحث ما که اصلا بگی ما همچی بگیش نبی ببخشید ما داریم فخشا رو میگیم مثلا مرده آوینه مرده بیان یه رحم بیان مثلا نه چیزی نیستش که همچی چیزی پس اختلاعات نصر که شما میگیم یه حفظ و این روز جایی که در واقع اختلاف میاه صورت میگه در بحث ما اصلا اختلاف میاه صورت دا دا دا. نمیگه اصلا نیست این بحث اصلا برای ما در واقع موضوعیتی نداره این دوتا رو زده کنار میهد امهان در روابط خویشاوندی که اینجا نمیشتر خواه کردن که آقای این که مادرش که فرزند در کجا قرارش میگه کرده مگه ما اصلا الزامی داریم به اینجا یه بچه میخواد بیاد به دنیا بیاییم بگیم که مثلا ما یه مف... مفاهیم عرفی داریم عرف عمو و دایی و خالب و امو اینا اصطلاحای یه حقایق لقویان دیگه درسته عرفیان دیگه یه حقیقت شرعیه است که بگیم آقا واضه اومده پدر را وز کرده مادر را وز کرده دایی رو وز کرده امور نه اینه یه حقیقت اطفیق به میگن دایی؟ خواهر مثلا، گفت نه خواهر برادر, برادر, برادر مادر. مادر مثلا میگه ما تو جریان ما مگه این مشکل وجود داره که مثلا ندونیم اینا کی هستن این بلاخره در کجا شکل گرفته بگید؟ در رحم این برادر این زن کی میشه بهش بگی؟ دایش میشه یعنی ما هیچ مشکل ابهام در رابطه خیشاوندی هم نداریم بالاخره صاحب رحم عنوان چی پیدا میکنه؟ بگی؟ عنوان مادر پیدا میکنه ما تازه دوستان من دوستان من ما اگر این جریان رو بذاریم ایش کنار الان فرزند رزایی خواهدر رزایی چی میشه؟ الان ما داریم اگر بچه یا یه زنی شیر بده با اون شرایطی که تو شرح لمه داشتید که مثلا تعداد دفعاتش پشت سرهم باشه فاصله نباشه یک شبانه روز کامل باشه این چه رابطه ای پیدا میکنم؟ رضایی میشه اون خوهرش میشه مثلا برادر رضایی یا خواهر رزاییش با اینکه پس معلوم میشه اینا یه حقایق و عرفیه هستند و اینکه شما اومدی اینجا گفتی من همیشه یه گفتی آسیب نهاد خانواده است امکان داره این مادر یه بچهی داشته باشه که خودش پس حالا رابطه با این بچهش پیدا بکنه پس اگه اینجوری باشه این امکان تو رضایی هم هست یا نیست؟ باید. هست پس اگه امکان شما بگید صرف امکان بله امکانش هست تو غیر رضایی هم اصلا تو غیر صرف امکان نمیشه اصلا صرف امکان نمیشه امکان داره مثلا یه زن مثلا به درهای 20 ساله به نوزادی شیر داد مادر چی میشه؟ رضایی امکان داره این زنه چون چند سالش مثلا 20 ساله دیگه؟ شد. شیرمه بچه خود بچه با باشه باشد 40 سالش میشه این بچه چند سالشه؟ 20 امکان داره این دوتو ما تیگو تایک بزنه یا نه؟ خیلی امکان پس اگه امکانش از شما بیه جریان رزا رو هم بگی برداری دیگه برداری دیگه رو رزا فتی میتونه به هم اصلا باشه؟ پس این نمیتونه نهاد خانه رو شما بگی آسیب میزنه پس اینا یه اشکالاتی هستش که هیچ کدوم مبنای فقهی نداره خب آما اینجا نفع بابا عرص هم معلوم میشه چه زمانی عشق کاره در نفع بابا عرص پیدا شدن نگفتی؟ اونجانی که مردم ها چی پیدا بشه؟ نصب پیدا بشه وقتی اختلاف نصب رو حل کردی شما این دوتر به تبرش در بوده نفعه و عرص اثرش چیه؟ اختلاف نصبه میگه آخو چون مرمولی باباش کیه پس نمیدون چی بهش نفعه دیگه چون فیلی در اینکتره باباش حتی الان میدونی شما تو قاعده فراش خودمون که اندردلل فراش بله قاهره ال الهجر آیا امروز بوزه ما میتونه از این قاعده استفاده کنه؟ الان مثلا اتفاق میفته دیگه درست شو؟ حالا بیفته مثلا یه آقایی به دیگه مثلا یه زنیه نفهم این حاله مثلا مثلا مثلا امروز سیغه این ای آقا شده درست شو؟ زن ها حالا همون میگیم یا اصه بوده سیغه شده بعد فردا سیغه یا اصه نه نه نه نه نه نه نه نه فردا سیغه یا نه شده. یا نه صدق. این تخصیصا این مثال آرش یا مثال دیگه زن این خانوم سیغه یا اقا شده این آقا رفته پیشش باید دخول نکرده دخول سنت نکنده اما مثلا اخراج منگ و اینها بوده ولی دخول نشه این زنستانی طلاق میگیره یه تمام نه سیخ هست چی میشه؟ مجرده یه میده سیدی توی دخولی چی میشه؟ باردار دو خون. دو خون. دو خون میشه دخول میشه این باردار میشه این زنستان باردار میشه الان فعلا فراشه فراش کنه چیه؟ دخول میگه بیره میشه با اولین رو میگه آه دو یا خیلی راحت بیاریم بزنگی... بیاریم. که الان آزبایشی چی مکنی؟ DNA ای مکنیم. های DNA ای ببوله. حتی برقی برقی بزنی بزنی هم. هم بعض از ای هم خیلی نمیشه واسه بیشتر میدن. رو این DNA هم با شرایطی بعضی از قوضات قبول میکنن. مثلا ارزونام یا اون مواد دیگه دی باشه آزبایش آزمایش کنن. برای احراس باشه. موادش بوده. او شخصی که آزمایش کننده آدمی متخصصی باشه که احتمال خطای نداشته باشه پزشکانون یاده آره یاده من مرجع کانونو چیه؟ پزشکانون خب میخذو رو آزمایش دی ای پس جریان نفقه و ارث با پی زمانی که پیشرفت کرد شبیه سازی درست میکنه حالا پیشرفت دی ای هم داشته باشده. پس اصلا اختلاعات نصب اصلا الان یه چیز رو می باشه پیدا باشه که دی این ای در واقع پیدا پس این نفق و هم هست آقا مجرد ماندن خب مجرد بودن آقا ازدواج. واجده مستحب برای اصلا بعضی تو اصل استحبا باشن و اصلا بود. از مستحب برگوزن بس کم قرمه. نه، های اگز به باشی که واجبه که اگه من انجام ندادم نه، این مجرد مماندن هیچه پس کسی آره، روستان این عمل ببینجور آره، یک آره. زبت میشه من داره آره، خیلی خوبی متعب شده این پایله هست، میشه، میفرستن روستان، اهل فن هستند دوستان آره، آره، دو تنی کند از خوخه های دیگر هستن آره ای دلیله چون مجرامت مادن هم دلیله درستی؟ آه گسترش همجنسگرائی یعنی اگر ما قائل بشیم به این جلیم به فرمایی این کار حرامه همجنسگرائی از نیمیره؟ همه الان میرم پرورشتا میگیرم هم دوستان همدزگرام الان <تصفيق> بگم منظور چین باشید چین باشید شبیل سازون میشه باطنی افتاق رو عوض نمی دارن کار خودشون پس دوستان بینیم که مجموع استدلال هایی که اینا کردند چه اصطلاحی که بوی استدلاله فقهی میداد چه استدلال هایی که اخلاقی بود چه استدلال هایی که عرفی بود مجموعه اینها در فقه وقتی ما خواهیم حکم به حرمت بدیم یا حکم به جواز بدیم نیازمند چی هستیم دوستان؟ دلیل هستیم، یه دلیل فقاحتی یا دلیل اجتهادی ما نیاز داریم اینجا تو بس نه فقاحتم دلیل وجود داره و نه اجتهادن نه تمام و دلیلیست از این و دلیل داریم اگه جای شک کنید شما مجرای چیه بگید برای خب اما به حال زمین سال هست مثلا ببین ببین فقر وقتی شما درسته بله بله, بله. مقدمه بودن میشه نه نه نه نه. مقدمه نه نه نه مقدمه نیست ازدبارش. نه ببین ما وقتی تو فقر مخوایی بگی شما جایز هست یا جایز نه. نیست منابع شما مشخصه کتاب الله سنت اهل بگره این و سلام عقل حالا اجماع کنون یک از اینا رو داری اینجا؟ شما دارید بخصو ببینید سر اخلاق آه بله اخلاقا اگر ما این کارو کنیم فاید ازدباد شکل نگیره اولا دلیلی نده شاید هم شکل بگیره آره شکل نگیره. پس نه ما جامعه ساوی نمز آوردیم اما این زمین الان اختلاط نصب از مقاسد شریعه است خب از ما گفتیم نمیشه دیگه گفتی اصلا اختلاط نصب تخصصا خارجه چی گفت اختلاط, اختلاط نصب کجا پیش میاد؟ جایی که چند مرد با یک زن آمیزشی داشته باشن هر چهارتا مدعی چی باشن پدری, پدری باشن اون موقع بگیراق پس ای ما اینجا ما ای کسی ادعایی هست مشخص اینجا ببین از اینا همه چی ساز آسیب ایجاد کننده بستر از اون ورشوبت بدم اتفاقا جلوی گیری میکنه از اینکه کانون خانواده از هم فرون نپاشد چطور یه زن شوهر باردار نمیشن دو دو چی میشه 20 چیجوری میشن الان طلاق های ما درصدش به خاطر چیه مرده چیکار میکنه دو تا راه پیش میگیره یک طلاق میده اینو میره یه زنه دو قاچاقی میره یه زن دیگه میگیره خب این اینم که پس پیش میشه شما رو داری میدی طلاق که خیلی منفوره که نمیگم حرامه منفور که هست؟ شما یه زنی رو در واقع بعد دو سال زندگی طلاق اون زندگی شما میدونی تو جریان طلاق بیشترین زرار رو کی میکنه؟ زن تازه زن. یه زنی هم که شده شما یه داغ هم به پیشونی شست که این زن چیه؟ متلقه مط... بچه دارم نمیشه. اجاقش کوره این اینه اینم که داره zarar میزنه پس نمیتونیم ما اینا رو به عمره در واسه اینه که اصلا فقه به این امور کاری نداره اصلا فقه به این امور کاری نداره فقه به من دلایل خودما داره بعد شما از اخلاقی بیا بحث بکن تو علم اخلاق این کار درسته یا درستی درست زمینه که میگیم که اتفاقا اگر اونجوری بشه یه ذره حفظ نهاد خانواده هم میشه ما میگیم یه مسخش پیدا می‌کنم آقا تو هم جنس ولی هزاران مصداق عادی هم نه این مصداقش درسته، نه این مصداقش فقه با ادله اجتهادیه با ادله فقاهتیه با کتاب، سنت، اجماع، عقل اینا هم نبود برو سراغ اصول عمل. عملیه شما یه براحت داری، یه دو داری، یه دونه احتیاط داری، یه دونه تخییر داری برو سراغ اینا، با اینا پیدا کنیم میبینی که اینجا اباهه داریم باقت خاصه اینا رو از عدله بدیم. یعنی که که حجت نیست بله همین نداره ببین اثبات بشه دیگه اینا قلب حرمت اصل اولیه چیه بگی؟ عباه هست اینا اصل گذاشتن که نا رفتن سراغ چی؟ خرمت، پس بعد در ما چی بیارن؟ دلیل. دلیل نیارن، چی میاد این وسط؟ عباهه، اینا تازه نگاه اهل سنت چطور؟ نباتی، حیوانی گیان؟ یعنی؟ تو نباتیش هم دوتا قول داشتن، دیده شون قبول؟ می‌کردن ادش زیادتون می گفتن تغییر در خلقت خدا نمیدونم تنوع از بین میره و ادله ی هفته قبل مفصلا اتفاق که اتفاقا منوز بود اما بریم سلاق فقه امامیه سوال و سوال این و شده چون دو که ما در بحث می کنیم اعمیه دیگه ما اعمیشو داریم بحث می‌کنیم یعنی انواع گونه های مختلفش انواع دستگاری جنتیکی بله دستگاری جنتیکی گردگرم به... نوعی دستگاری که اصلا به جنس نر هم نیاز نیست هم. یعنی از خود زن افره از خود زن تکسلویی مثلا در واقع از خود زن در واقع در خود زن مثلا خو اه اه اینجوریه هاجره مریم ما یه لقاح مسئولی داریم مرد مشکل داره مثلا همین نطفه همین مردو میگیرن مثلا در رحم زن قرار میدن یا یه متآزمشی یه مدل دیگه هست اصلا مردی نیست حالا حضرت مریم من اینجوری نبود حضرت مریم چهجوریه خودش خب شوهری نداره خودش بیاره من خب همین دیگه اینو الان اصلا من ها چیز نگردم ولی یکی از بچام رو ما خونی زیاد علاوه که حق دارم <متصال> دو خودشون هم کرونا سرچند را نه. بله میگیرن خودشون بله. بعد. بله بعد. بله بله بله بله این هست. نه هیچ مشکلی. خب، این نگاه اهل صلوات آمی. اما بیایم تو نگاه امامیه خودمون. بیایم از اون اول شروع کنیم نباتی هیمانی. من یه دسته استفتن نوشتم با درست شد؟ سوال. آیا شبیه سازی حیوان زنده توسط تکثیر سلولهای وی حیوان جایز است ای سآل حالا بعضی دنیا رفتن اکثرشون هم هستن مروم بهجت اشکالی, به ذره... اشکالی به نظر نمی رسد دو من رهبری این کار فی نفس اشکالی ندارد فی نفس رو میارن؟ امکان داره مثلا مقدمش حرام باشه. امکان داره این کار مقدمه برای کار حرامی باشه پس پسید یعنی یا مقدمت حرام باشه که بعد یا خودش مقدمه یه حرامی بشه لذا فهمودن که این کار فی نفسه یعنی خود این کار یعنی فارغ است اثرش باشی. یا مقدمش خودش فی نفسه اشکالی نه داره مثلا ازدواج این آقا با این خانم اشکال داره فی نفسه اشکال, اشکال داره ولی مثلا مقدمش این بابایی گفت باید من با تا بتونی طوری بگیری خواه هم با کشتن باباش چیه حرام. دیگه در اون در حالی همینجوریه ولی چون مقدم این چیزه م... خانون رو. خانون رو. خانون رو. خانون رو خب در آیت الله سیستانی مانعی ندارد آیت الله مکارم این کار در مورد حیوانات اشکال ندارد آیت الله نوری احمدانی در غیر انسان جایز است در غیر انسان جایز است آیه صافی اگر مستلزم خلاف شهر نباشد به نفس اشکالی ندارد دوباره مثل خیلی فی فینقصرشون با یه تفصیلی بیان کردن که خلاف شهر نباشه بعد این هست این لذا یه نتیجه گرفت میشه بگیریم که شبیه سازیه. حیوانی و نباتی اون قید فی نفس قید قشنگیه خودش مستلزم هیچ در واقع حرمتی نیست. یعنی عدله پیدا نمی کنیم. من که میگم یا تو مقدمش یا در در واقع اثر و نتیجهش مثلا، مثلا شما گیاهی پرورش بدی که بعد این گیاه اگه توی منطقه باشه، این گیاه خود به خود گرده افشانی میکنه، اون منطقه مسموم بیشن مثلا با استشمام مثلا گرده های این گیاه. در ادامه میره این گیاه درست میگه شبهیسازی میگه که توی منطقه این گیاه پرورش بده و مرده اومده. آه شبهیسازیش مشکل نداره که ببرت تو مرده. آه دست به اون هم بود اونه. یعنی من این بس اصل کارش مشکلی است. اگر نتیجهش اون بشه یا اون خودش بکات باشه بشه اشکال می‌شود. اما این لحظه است که شبهیسازی انسانی هستش که. در واقع حکمش چیه؟ در اینجا هم بین امامیه تو اونجا تقریبا شهرت وجود داشت و اجماع وجود داشت اما در اینجا اختلاف وجود داره بعضیا به طور مطلق جایز میدونن بعضی به طور مطلق جایز نمیدونن نمی یه سریان قائل به چی هستن؟ تفصیل هستن بله تفصیل چون چند جوره دیگه بله ببینید بعضی اومدن اینکه که میگن آقا جایزه دقیقا این دلیل اهل نه تو گفتیم آقا ما دلیلی بر حرمتش وجود نداره یعنی اصل اولیه در اشیاء چیه؟ اباها. اباها هست آفرین اصل اباهه مباه بودن عمل آقا این کار جایز است یا جایز نیست؟ امکان داره شما بگی آقا شو. اگر مثلا تماس نامحرم او تماس نامحرمه مثلا این کار مستلزم اینه که مثلا ارزو میکنم یه نامهرم به جسم این خانوم دستکاری کنه دست بزنه نگاه کنه این حرمتش به خاطر چیه؟ آمیلن. لمس نامهرمه نظر نامهرمه اما خود کار به ما خوبه هو چی؟ بشه. میگه ما دلیلی بر حرمتش نداریم لذا چون دلیل بر حرمتش نداریم بر به اصل اولیه چیه؟ بباهم. در اواه اصل اول یه برعبه هست لازم یه با توجه به این اصل ما هیچ مشکلی نسبت به این مطلب نداریم حتی بعضی اومدن اینو میگن میگن آقا این تغییر در سنت الهیه تغییر در سنت الهیه اومدن گفتن آقا او ما تغییر در سنت سنت الهی چیه؟ اصلا منظور سنت الهی چیه؟ که ما میخوایم تغییر بدیم آیا ما یه نفر میخوایم یه تولیدی انجام بدیم که غیر انسانی باشه؟ نه مثلا ما میخواییم یه انسانی متولد کنیم با این کار ما انسانهای تولید میشن چهار تا پادر هم تا پادر دو تا کله دارن سه تا کله دارن آیا ما اینه؟ ما قطعا این کار رو نمیتونیم بکنیم تازه بعضی تو آثارشون اینو میگن میگن اتفاقا این کار نوعی اکتشاف در اسرار الهیه ما داریم تازه با این کارمون از پرده برمیداریم از رازهای بیکرانی که در های بدن انسانی وجود داره که مثلا پوست دست هم یمکن از این پوست دست چی تولید کنند یعنی پوست دست رو می‌کنن در واقع اون عملیات ما اینو نمیدونیم دیگه بعد متخصصا بگن با این عملیات درون رحم همون زن قرار میداد مثلا یه بچه به دنیا بیاره اتفاقا میگن این کار امکان داره باعث پردگشایی از اسرار الهی و شناخت بیشتر خداوند متعال تنها ما تغییری انجام نمیدیم در مخلوقات الهی بلکه اومدی پرده برداری از این کار هم کردی پس این دلیل تغییر در خلق الله یه دلیل ابسیه دو اینا که بعضی‌ها میگن جایز نیست بحث رو مطرح میکنن میگن آقا انسان که مالک جسمش نیستش که انسان مالک جسمش نیست سری جواب نقضی بدید فقها استفتا کنید آقا فروختن کلیه حکمش چیه؟ فروختن کلیه دیگه فروشش دیگه و تازه اونجا فروشش نیست اونجا در واقع شما میخواید با او یه بفرمایید که بچه ای رو به دنیا بیاری این اصلا فروختنش چیه؟ به نظر شما چیه حکمش؟ هیچ اشکالی نداره پس اگر فروختن کلیه به مالکیت من بر جسمم ضرر نمیزنه این بحث شبیه سازی به طریق بگی او پس ما اون مالکیت که مطرح میکنن بحث ضرره به نفسه اونم ضرری که قابل جبران نباشه باشه بیان از باب ضرر حرامه نه از باب مالکیت گاهی اوقات ببینید امکان داری یه سری اعمالی حکم تکلیفی داشته باشه ولی حکم وضعی نداشت آقا تکلیفاً کارت چیه بگی؟ حرامه اما مثال ارز کنم مثال آقا بگی اندن ندا حرمت چی داره؟ تکلیفیه داره اما قراره و... یعنی از اثر وضعی نداره؟ بی باطل نیست به باطل؟ نیست فعل چیه حرام بی ولی اثر خودشو اون انتقال صورت بگیره یا نه مالکیت بله پس قرار نیست فعله بر فرزند که من فعل حرامی انجام بدم سرمن حرمت چی داره؟ تشریفیه داره از ازار رابطه پدری درست بشه یا نمیشه؟ بله پس این شما نمیتونی اینم به عنوان یک دلیل برای ما؟ ذکر کنی پس در واقع فوقه این بحث مالکیت رو پذیرفتن که بله انسان مالک جسم خودش به این معنا که گفتیم هست کمایی که کلیدیه میتونه طرف بفروشه الان تو بحث احدای عوض اوزبه. احدای عوض با جایز میانی جایز نمیدونم دیگه او جا مرده باباش اختیار داره اینو بده و خودش به طریقه اولا میتونه پس فقهای شیعه مخصوصا معاصرین این بحث رو پذیرفتن این هنوز هیه و زنده است فاللذا نمیشه ولی خب عموما میگن جایز است بعضیا هم این رو میبرن جزء در واقع این عدلل رو جواب بیدن بعضی هم نمیگن همچنان اون حرمت اولیش هست الا ماخر عجب دلیل یعنی یه حکم سانویه بیاد دلالت بر چی بکنه جوازش بکنه کلیم هم همی حرفو میزنم احدای عوضم همین حرفو میزنم یعنی اصل اولیش چیه حرمته الا اینکه که یه دلیل میاد حاکمه بر این حرمت میشه لذا تو شبیه سازی میتونی بگیم چه درشیه چه در اهل سنت یه اجماع قاطعی وجود نداره اجماع قاطعی تو این قسمت وجود نداره تو البته تو شیه تو حیوان و نباتش قطعا اجماع وجود داره ولی تو انسانش تو خود عدله ما هم این قابل اثبات نیست حضرت امام من متنی ازشون خوندم حتی اگر در آینده یه اتفاقی بیفته مادر باشه پتر از درخت باشن یک درخت رو یک کاری کنن یک وقت نرداشته باشن این از انسان گذشته بودن. ایمان هم یعنی از مرده انسان گذاشته بودن حیوان هم گذاشته بودن از نبات کفتن هم بگیرن این هم اشکالی مونه ببینید من یک نکتهی به شما آگیم آقا ما دستمون اینجا از عدله کتاب و سنت خالیه درسته و بعد دیرون سراغ عدله چی؟ فقاحتی. فقاحتیمون بریم به سراغ اصول عملیمون تا کمک بگیریم و الا چون یه پدیده نوظهوره یعنی اطلاقاتی که وجود داره در آیات و روایات پاسخون ما نیستش که بریم سراغ مثلا اصول لفظیم و بیم و اصالتال اطلاق اصالتال مثلا اینه همچیکاریمون اینجا نمیتونیم انجام بدیم لذا این بحث مثل احدا همین الان هم میدونی که احدای عضو بحث از فقاها جایز همین الانش. همین که الان مثلا کسی مرگ مغزی میشه اینو جایز نمیدونن ولی اینو بالاخره یه اختلافی هستش که حالا بعضیا به اطلاقات تمسک میکنن بعضی میان سراغ و اصول عملی و مصلحت ثانویه‌ای پیدا میکنن و حکم میدن بهش این یه دورنمایی از مباحث مرتبط با شبیه‌سازی یا بس رو تموم کنم، انشالله تلاش میکنیم هفته آینده بس بیمه رو مطرح کنیم که اهل سنت تو بیمه هم خیلی بحثی الان چه آینه بیمه‌ای که ما داریم اونا دارن یا ندارن چه بیمه ماشینمون اونا تحت چی میبرنش چه عقدی میبرنش آیا ع... در واقع اینجا عقد هست اصلا یا عقد نیست اگر عقد باشه باید یه ثمره غلایه‌ای داشته باشه یا نه اینم ان سعی می‌کنیم تو جلسه مطرح کنیم دوستانی هم که گوش میکردن خوشبالتون خونهی میخوابید راه را یه چورتتون هم زدید توی یه ساعت چاییتون هم خوردید ما و دوستان هم اینجا میبا کنید نبیده میشه نبا کنه اینو بیاید نه را بیا. درستش کردن میبا کنید دوستان شما تو خونه میخوابید اینا رو ببینید اینا اهل علم هم آه؟ اگر یه موقع و برعکس شد. حالا یه کاری می‌کنم که دیگه اصلا کلاً نبی و نگاه کنید از این دوستان ما اینجا زحمت شما هم افت زحمت او آره. آره، خیلی ان شما رو به پای وصخی میسپارم. التماس دعا خدا نگهدار. آره بکشیش که. آینه زحمت. آ سلامتی. التماس